حکایت دانشمندی را دیدم به کسی مبتلا شده و رازش از پرده بر ملا افتاده جور فراوان بردی و تحمل بیکران کردی. باری به لطافتش گفتم دانم که تو را در مودت این منظور علتی و بنای محبت بر زلتی نیست با وجود چنین معنی لایق قدر علما نباشد خود را متهم گردانیدن و جور بی عدوان بردن. گفت، یار دست اطاب از دامن روزگارم بدار. بارها در این مسلحت که توبینی اندیشه کردم و صبر بر جفای او سخت تر آید همین که صبر از دیدن او و حکما گویند دل بر مجاهد نهادن آسان تر است که چشم از مشاهده برگرفتن هر که بی او به سر نشايد برد گر جفایی کند بباید برد روزی از دست گفتمش زنهار، چند از آن روز گفتم استغفار نکند دوست زینهار از دوست دل نهادم بر آن چه خاطر اوست گر به لطفم به نزد خود خاند ور به براند او داند.